خلاف راه سواب است و عکس رائے اولل الباب دارو به گمان خوردن و راه نادیده بیکاروان رفتم امام مرشد محمد غزالی را رحمت الله علیک پرسیدند چگونه رسیدی به این منزلت در علوم گفت بدان که هرچه ندانستم از پرسیدن آن ننگ نداشتم. امید آفیتان گه و موافق عقل که نفس را به طبیعت شناس بنمایی. بپرس هرچه ندانی که ظل پرسیدن دلیل راه تو باشد به عز دانایی.